حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت آری به اتفاق جهان می توان گرفت افشای راز خلوتیان خاص کرد شم شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت زین آتش نهفته که در سینه من است خورشید، شعله ایست که در آسمان گرفت میخواست گل که دم دمزند از رنگ و بوی دوست از غیرت سبا نفسش در دهان گرفت آسوده بر کنار چو پرگار میشدم دوران چو نقطه آقبتم در میان گرفت آن روز شوق ساغر می خرمنم به سو کاتش ز اکس آرز ساغی داران گرفت خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان زین فتنه ها که دامن آخر زمان گرفت می خور که هر که آخر کار جهان بدید از غم سبک بر آمد و رتل گران گرفت بر برگ گل به خون شقایق نوشتند کان کس که پخته شد می چون ارقبان گرفت حافظ چه آب لوت ز نظم تو می چکد حاسد چگونه نکته تواند بران گرفت